بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشغف الأنبياء سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد أبياتي هاس در باب الزهد ورقائق از يكي از محدسين وعلماء بزرقين عاس معروفة بحافظ حكمين أبياتي بنامه الهائية قبلا حائیه رو ما داشتیم شرح دادیم و ابن عبی داود بود که دوازه قرن قبل فوت شده الان امشب متن حائیه داریم با های دو چشم حائیه هم شیخ حافظ ابن احمد الحکمی هست القصید الحائیه في و الترغیب و الترهیب شیخ حافظ حکمی در جوونی فوت یعنی تقریبا سی و سالش بوده که فوت شده از شاگردین محدث جنوب عربستان از محدثین یمن و عربستان اون هم مرزن با هم دیگه در منطقه سامره در جنوب عربستان بین یمن و عربستان از شاگردین شیخ عبدالله قرآوی هست در منطقه معمولاً برای طلب علم می‌رفتن به هند برای طلب علم نزد محدثین سن آنچنانی هم نداشتن ولی خب اهل قلم بودن شیخ حافظ حکمی مثل امام نبوی اهل قلم بودن در دفاع از سنت در بحث رقائق در عقیده برای خودش منظوماتی داره یک از منظوماتی که ما داریم الان همین طایه هست شاگردین شیخ حافظ حکمی در اون دورانی که ما در مدینه بودیم بعضیاشون بودن مثل شیخ زید المدخلی مثل شیخ احمد النجمی تو شیخ ربیع المدخلی اینا از بزرگان شاگردین صاحب ایمتنه حافظ حکمی ایک از خاطرات خودم را برای شما تعریف بکنم رفته بودیم به جنوب عربستان به پیش شیخ احمد النجمی و شیخ زید المدخلی رفته بودیم به منزل شیخ زید که پیشش چند تا متن بخونیم از سیاست الاصول و اصول سته و اینا شروع کردیم شیخ خیلی خوشحال بودن شیخ زیر الله رحمه الله قبرش رو نورباران بکنه وظیفه ما طلب علمی ان که برای اساتید خودمون دایر رحمت بکنی یاد نیک از اونا بکنید الله رحمتشون بکنه الله قبرش رو نورانی بکنه الله فرده و اعلی نصیبشون بکنه شیخ زیر خیلی خوشحال شده بودن گفتن که امروزه کم پیدا میشن به علمی که اهمیت بدن به علوم شرعی بیان پیش من خیلی خوشحال بود روزی که قصد برگشت کردیم عشق میره گردیم می که خیلی خوشحالم طلاب علمی پیش من اومدم برای طلب علم همه طلاب دنیا شدن روبوده شدن از دست من همه متاثر به تفکرات بیگانه شدن بیراه رفتن خیلی خوشحال بود از اینکه طلاب علمی اهمیت دادن به متون شرعی از جمله این متنی که ما داریم میخونیم هاییه اون متونی که علمای قدیم نوشتن چه در بحث اعتقاد چه در بحث نح چه در بحث ترغیب و ترهیب البخره بزرگان ما موعظاتی داشتن، موعظی داشتن مثل امام احمد در بحث رقائق می در بحث زهد می نویسه امام ابن المبارک می نویسه با وجود که ثروتمند بودند ابن ابن مبارک ولی زاهد بودن اهل دنیا نبودن دنیا دوست و دنیا پرست نبودن خب ما باید این ها رو بخونیم اینجا شیخ حافظ حکمی خلاصه و چکیده ای از اون چی که در کتاب های زهدی همچون امام محمد و ابن المبارک و دیگران اومده را اینجا چند نکته از اون کتابا در میاره و اینجا عبیات به صورت ابیات شعر میگه یادآوری میکنه این یک نوع تذکره ذکر ان الذکر تنفع المؤمنین ما نیاز به تذکر داریم، نیاز به یادآوری داریم. نیاز که ك... این متون با برکت را بخونیم. در این کتابا والله برکت. چرا برکت در این علومه در این متون چون این ارس پیغمبران الهی رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام می فرمایان ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا. پول گذاشتن از خودشون؟ نه والله. چی گذاشته؟ انما ورثوا العلم. گذاشتن. وارسین علم گذاشتن وارثین این علم کیان علما علما برای اینکه ما محروم نشیم از اون علم نبوت از اون میراث برامون اینجا نوشتن برای یادآوریمون، برای تذکرمون بس این شرفی حس که الله به من و شما داده که از این میراث بهمون برسه و نصیبمون بشه از میراث نبوت بهمون رسیده والله مزیتی هست که الله به ما داده خیلی ازش محرومه جلسات علم سفره صفری علم سفره‌ای که گرد اون فرشتگان حلقه می ما من قوم یجلسون فیذکرون الله الا وحفتهم الملائکه ملائکه گرد اون جلسه و مجلس می نشینه الله یاد نیکی از اون بندگانش میکنه فرشتگان و مائیها در دریا طلب استغفار میکنن برای طلب علم به خاطر همین میراث نبوّت همین چند تا حدیث و که ما میخونیم و درست میفهمیم و درکش می‌کنیم این مزیت که الله به من و شما عطا کرده قدرش رو بدونیم بریم به خود ابیات شیخ حافظ حکمی بالا رحمه الله و مالی وللدنیا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي ولست انا لها ولست بميال اليها ولا الى رئاستها نتينا وقبحا لحالها عمالی والد دنیا از خودش شروع میکنه چی میخوام از این دنیا که چی بشه این دنیا داشته باشه؟ مگر این دنیا ارزشی داره نزد الله که من او را بخوام الله اکبر بله، معاویه میدونه از معین نبوت از ششمی وحی میدونه که رسول الله صلی الله عليه و فرمودن این دنیا بالپشی هم نزد الله ارزشی ندارد. این عالم ربانیه. این دنیا لا تهزنوا عند الله جناح بعوض ارزشه یک بال پشه نداره اگر داش لمسق منها کافر شربت ما اگر ارزشی داش یک لیوان آبش از این دنیا به کافر نمیداد الله دنیا است بی ارزشه رسول الله صلی الله علیه و سلم دنیا ملعونه درسته؟ انا میاد ان شاء الله دنیا ملعونه شر ملعونه چون بی ارزشه چون دنیا فنا میشه نابود میشه چیزی که فنا و نابود میشه ارزش نداره چیزی که از بین بره ارزش نداره میگه ومالی ولی دنیا ولی به بغیتی هدف هم این دنیا نبوده و نیست و نخواهدم بود یک طالب علم اینا درسا یک طالب علم نباید دنیا دوست و مال دوست و دنیا پرست باشه تعس عبد الدرهمی و دینار اون کسی که برده ماله برده پوله اون خاره اون زلیله مگر نمیبینیم. اون دختری که از خانه پدرش فرار میکنه و تن به ذلت میده خاطر که سوارم فیلم ماشین بشه برده اون ماشین و اون آهنه برده اون ماله خود فروشی میکنه آبرو و ناموس و حیثیتش را میفروشه تا عبدالدر همه و الدینه خوشده از رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اینکه مال دوست و دنیا دوست و دنیا پرست نباشیم خاطر دنیا خیشاوندی خودمون ارحام خودمون رو نکنیم ارزش ندیم به خاطر دعوا بر سر ارث و میراث این مال عزیز نشه اونقدر که سبب بشه ما از هم رویگردان بشیم بدگویی هم دیگه بکنیم به خاطر مالی به خاطر اختلافی بر سر مبلغی همدیگه رو تخریب بکنیم و پشت سر همدیگه حرف بزنیم و بدگویی همدیگه بکنیم و تهمت بزنیم والله ان یعنی صفات مؤمن نیست این از مؤمن نیست صفات اون مومن متقی پرهیزگار آخرت دوست خدا دوست صفات اون مؤمن نیست و مالی ولی الدنیا ولیست بغیتی پس بغیه و هدف انسان غایت و قصد انسان چی باید باشه؟ قصد انسان نباید دنیا باشه پس چی باید باشه؟ آخرت رضای الهی هدف خوشنودی الله جل شانه جل ثناؤه هدفمون در زندگیمون باید رضایت و خوشنودی الله باشه و بس نه اینکه فلانی از ما راضی باشه اگر ما احترام به والدین خودمون داریم برای رضای الهی و به والدین اگر دستشون میبوسیم اگر سر والدینمون میبوسیم احترامشون میکنیم حرفشون رو سر و چشم میذاریم پدر و مادر بزرگتر مدیر معلم استاد این احترام احترام به نبوته، ليس مننا من لم يجله كبيرا. ازمانیس اونکه احترام و حرمت و تقدیر اون والدین خودش، اون استاد خودش رو نگاه نمیداره، اون مدیر خودش بزرگتر از خودش. هر کسی بخواد باشه، بی ادب نباید باشه. احترام بزرگتر رو باید داشته باشیم. از ما نیست. اصفات مؤمنین این نیست که بیادب باشه خیلی جا هست انسان شاید احساس بکنه زورگویی مثلا بزرگتر از مدیر باشه شاید استاد سره کلاس باشه هیچ وقت نباید نگاهمون باشه که این داره مرا تحقیر میکنه زلیل میکنه خار میکنه نه نگاهمون این که این به مصلحت ما داره فکر میزنه حتی والدینمون خیلی بهمون میخوره میگه که مثلا به فرض میگه برو فلان کار انجام بده احترام بدون که برات عزت میاره ای مؤمن والله احترام عزت میاره و بیادبی و گستاخی و خاشی چیزی جز ذلت نیست والله عقوبت اون کسی که عقوق والده میکنه در همین دنیا قبل از آخرت کما تو دین و تو دان امروز با پدر و مادرت میکنی فردا فرزندانت با خودت خواهند کرد. بس احترام کن تو احترام ببینی این همیشه باید مد نظر من باشه والله انتقام راحته انتقام راحته اینکه اگر کسی بهتون بدی که انتقام, انتقام بگیرید ماشینشو پنچر کنی شیشه ماشینشو رو خورد کنی راحت او را به رگبار بمندید آخرش دیگه انتواش راحت کن گذشت سخته ولی کن عف سخته اینکه که روی غرورت بذاری کبرت بذاری اون منیت خودت اون عزتی که بهش افتخار میگنی کنی پاری اون گذاشتن سخته چقدر خداوند چقدر الله باری تعالی در قرآن توصیه به عف و گذشت میکنه کنه از تقوارست از الله دو ومالي لي ولد وليست بغيتي ولا منتهى قصدي انتهى قصة مقصدا دنيا نيس ومن برأي الدنيا خل شو دا برأي شي خلقت شو وما خرقت الجن والانس إلا ليعبدون ما خلقت شو دين برأي الله يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم چراچه در حدیث عبدالله بن عباس روایت روزی عمر بن خطاب رضی الله عنه نازل رسو سسنا می بینند که روی حسیر خوابیدن آثار اون حسیر روی پیراهن رسول الله صلی الله عليه و سلم عمر بن خطاب رو رسول الله صلی الله و سلم میگه یا نبي الله لو اتخذت فراشا اوثر من هذا یک فراشی یک زیراندازی نرتر از این یا رسول الله برای خودت نظر میگرفتی این حسیر الان کل بدنت جین حسیره که روش خوابیدی رسول الله صلی الله عليه وسلم میفرماین مالی ولد دنیا این آبیات شیر این جوش روش دوئین حرف صخن رسول الله صلی الله عليه وسلم والقوم کیه رسول الله صلی الله عليه وسلم قد کان لكم في رسول الله عسوة حسنا والقوم رسول الله صلی الله عليه وسلم فرقی میکنه چه ماشینی سوار بشی نه والله فرقی نداره مهمینی که به اندازه روزیمون باشه که چی سوار بشیم به اندازه اون قد که الله روزیمون کرده نه اینکه خودمون رزق دین ببریم و خودمون در بدبختی و فلاتت بندازیم به خاطر اینکه فلان ماشین سوار بشیم حرص بخوریم چرا فلانی فلان ماشین داره منم باید فلان ماشین داشته باشم این از صفات مؤمن متقی نیست رسول الله صلی الله علیه ماس و ماست رسول الله صلی الله و بشه پدرمون مادرمون و خودمون بهمون تواضع یاد میده بهمون فروتنی یاد میده بهمون حب الله و اخرت یاد میده به من در یاد میده که محبت این دنیا در دلمونه باشه. الله میخواهد روی حصیر بخوابیم یا روی فرش بخوابیم یا روی پنبه بخوابیم یا روی ابریشم بخوابیم. چه فرقی میکنه جسدی که قراره تو خاک بره؟ مهم راحت خوابیدن نه اینکه من بهترین فراش رو داشته باشم. بعد از اون شکر و سپاسش رو به جا نیارم، روش درکات نماز نخونم. به درد چی می خوره؟ من بهترین فرش و فراش رو داشته باشم، الله به من داده. بهترین فراش پادشاهانه 100 سال قبل آرزو داشتن این چنین فرشی که ما روش نشستی. کی تو اون زمان این چراغ و این کلر و این برق تو خواب میدید تو خوابم نمیدیدن حتی پادشاهانش ولی امروزه اون ناتوان و تواناش کلر داره برق داره فرش داره بازم کفران نعمت میکنه بازم ناشکری میکنه صلی الله علیه و سلام میفرما مالی ولی دنیا ما مثلی و مثل الدنیا الا کراکب سار فی یوم صیف مثال من مثل من در مقابل دنیا میگه مثل کسی که سوار سواری شده، حالا اولاع شتوره رفته در روزی تابستانی یوم صاف روزی از روزای تابستان، فسذل تحت شجر از گرما رفت زیر یک سایه، فسذل تحت شجره ساعت من نهار، ثم راحه و تراکها سپس از زیر اون سایه رفته و ترقش کرده رهاش کرده مثال من, من دنیا میگه مثل این سایه است این دنیا مثل این سایه اومدم زیرش یکم استراحت بکنم استراحتم که تمام شد دیگه مقصدم اینجا نیست این سایه نیست این دنیا نیست هیچ وقت هدفت قصرت این دنیا نباشه این دنیا یک سایه بیش نیست این دنیا یک سایه بیش نیست مدت زمان معدودیه ساعتی در این دنیا هستیم سپس بعد از این دنیا بریم وست تو به میال ایه هم و در این دنیا ندارم واست تو به میال ایهها میل و نه به زینتش نه به مالش نه به میلی ندارم ولا این رئاستها افستی هاا نه اون جاهش بون اون مقامش بون اون منسبش این دنیا مثل یک جسدیه که گندیده. این دنیا مثل یک فاضلاوی گندیده. این دنیا زشته و ق این دنیا زشته. زیبا نیست که دلم را بهش خوش بکنم جاودانه نیست زائل رفتنیه نابود شدنیه داره به یاد میده ای طالب علم اینجا از زبان حال خودش شیخ حافظ حرکت داره میگه گفتم از باب اقتدا به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم از دعاهایش چنین بود اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا هم ولا مبلغ علمنا از دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم دعای عزیمیه الا میاد ان الله مفصل تر بهش هاین از الله رسول الله صلی الله علیه و آله مقام شرفش میخواهد میگه ولا تجعل الدنيا قبلتی میگه ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا مصیبت ما در دین ما قرار نده پروردگارا بار الها یعنی سبب نشه با معصیتی با گناهی با شرکی با بدعتی پروردگارا دوچار مصیبت در دینم بشم این دینم ضعیف بشه بار الها بهت پناه بیرم. بعد از اون هم این دعا کردن کردم ولا دنیا الدنیا هم همنا و این دنیا هم هم و غمی برای من قرار نده که از دینم غافل بشم از طلب علمم غافل بشم از پرهیزگاری و الله پرستی منو در غفلت بیندازه از عبادت و طاعت منو دور بکنه ولت جعل الدنيا اکبر همینه دعواس همیشه از الله دعای ثبات بخواهین این بیراهه هست ما گفتیم هدف چیه عبادت الهی نباید این دنیا سبب بشه از عبادت الهی دور بشیم و رسول الله هم صلی الله علیه و سلم از الله یاری می طلبیدن این دنیا را برای من سببی از اسباب دوری از تو قرار نده از دور نشم با این دنیا با همش با غمش با اندوهش با فکر به این دنیا زدن اینکه چه مالی چه خونه ای چه ماشینی چه وسیله ای داشته باشم سبب نشه که در غفلت از عبادت و اطاعتت بیفتن بار الها قلت تجعل الدنيا اكبر هم من ولا مبلغ علمنا ولا مبلغ علمنا این بار الها این دنیا را سبب این قرار نده که ما فکرمون فقط حال و روز این دنیا باشه فقط به حال روز این دنیا فکر بزنیم که چی بخوریم بنوشیم کجا تفریح بریم کجا وقت منو بگذارانیم بار الله فهم ما و درک ما و تفکر ما اون چیزی که بهش فکر میزنیم دنیا نباشه این مشغله های دنیاوی نباشه حال روز مسلمان ها امروسی هم مقب دنیا چی داشته باشم و چی نداشته باشم ولا تجارت دنیا اکبرا هم ولا مبلغ علمیه مبلغ ایقاه یعنی اون هدف اون مقصد ما را بار ال ها مقصد از هر چیزی که در این دنیا هست مقصدمون این دنیا قرار نده ال ها. مقصدمون این دنیا نباشه ولن مبلغ علمنا تفکر من یا رای عرب حتی فکرشم پروردگارا ما را حتی به فکرشا رسولا داره پنامی برا بار الله حتی فکر این دنیا هم از ما بگید حتی فکرش دنیا دوسی در قلب نیاد که هیچ حتی در فکر ما هم خطور پیدا نکنه یعنی سبب نشه که این ذهن من درگیر بشه که حالا من باید موتور داشته باشم باید پدرم بخره باید یا خودم بخرم و باید کار بکنم که باید موتور داشته باشم یا ماشین داشته باشم یا فلان باید داشته باشم حتی فکرش این دواست اسباب اقتدا به رسول الله صلی اللہ علیه و سلم و دعای رسول الله و عمل به دعای رسول الله اینجا این ابیات را میگه شیخ حافظ حکمی الله رحمتش بکنه و قبرش الله نورانی بکنه این منافات نداره از این که انسان مرکبی حنی داشته باشه منزلی بزرگی داشته باشه همسری داشته باشه یا همسرانی مانعی نیست سن به اندازه‌ای که داره هر کسی به اندازه اون قدری که الله بهش داده اون لیاقت ها را الله تشخیص میده که به کی چی بده و به کی چی نده روزیرا الله تقسیم میکنه یکی ژاپنی زاده هست یکی چینی زاده هست یکی ایرانی زاده هست برای الله فرقی نمی کنه همه بشرا فرقی نمی کنه این چه ملیتی داره چه پاسپورتی به همراهشه پدر مادرش کیان الله نگاه چهره ها نمی کنه نگاه رنگ ها و قیافه ها نمی کنه الله لا ينظر الى سواريكم ولا الى سادق خاطر جسمت میخواد چاق باشی لاغر باشی فرقی نمیکنه کنه برای الله برای الله چی متره تقوا هرگیزداری قلب ان کرمکم عند الله اتقاكم الله نگاه تقوا میکنه فرقی نمیکنه من چه لباسی ببوشم شما چه لباسی میپوشید من کجایی باشم شما کجایی باشید من نسبم به کجا برسه شما نسبتون به کجا برسه اون چیزی که برای الله مطرحه چیه والله چیزی جز قلب نیست دروغ گفته اون کسی گفته که نسبت دردت به دردت میخوره من بطعبه عمله لم يصرع به نسبه نسبت به دردت چی میخوره وقت خودت ارزشی نداری، لیاقتی نداری، شرفی نداری پدرت اگر کاری بوده، شرفی، مقامی داشته اون عملش بوده که او رو بانجر با تو چی داری که بهش افتخار بکنی؟ تو چی هستی چه کارهی؟ چه عمل خوبی کردار خوبی داری؟ برای الله خودت مهمی. نه اینکه پدرت چه کاره بود، مادرت چه بود یا جدت چه کاره بود برای الله تو مهمه چقدر تو قلب مهربانی داری دلسوزی داری قلب پاکی داری الله برایش این تو مهمه خالی از حقد و کینه و حسادت و بغض و نفرت و دیگر اون اعمال قلبی پسته الله برایش این مهمه که قلبت از اینها پاک باشه الله میخواد هر چیزی که باشه الله نمیخواد در قلب ای مومن حسادتی بیاد که چرا فلانی عربه یا من عجمم چرا فلانی نمیدونم ماشین فلانی سوار من فلان ماشین سوارم این پسته در قلب مؤمن نباید این انگیزه ای بیاد چرا فلانی داره چرا من ندارم نباید در قلب مؤمن بیاد این حسادت این شعار ملیگری اینکه اینا عربن ما فارسی این نمیدونم فلانه والله چیزی جز گناه و معصیه چیز دیگری نیست چیزی جز اون دنیای ملعونی که وابسته به با اونه نیست اگر ما دم از ملیگری و نجات پرستی و دم از نسب و قوم و قبیله بزنیم والله ما از جاهلیت در ما هست والله شکی درش نیست ابو غفاری رضی الله عنه روبه بلال میکنه میگه یا ابن سوده فرزنده که مادرت سیاهه رسولCTAssertنگ نگاه ابوذر غفاری میکنه با اون مقام شرفش اون زحمتی کشیده بود برای مسلمان شدنش. رسول نگاه نمیکنه که این چقدر زحمت کشیده برای اسلامش نگاه به اون عمل و کردار میکش نمیکنه این خصلت جاهلیت که در اون صحابی میبینه رو بهش میکنه میگه انکم روم فیک جاهلیه در تو جاهلیت ابوذر توبه کن از این عملت از این حرفی که زدی یعنی چی سیاهه یعنی چی مادرش سیاهه مگر به انتخاب خودش بوده الله انتخاب کرده که این سیاه باشه و این سفید باشه و اون اون رنگی باشه و این ملیتی باشه این اعتراض بر اللهه مگر ما انتخاب کردیم به انتخاب خودمون مگر ما فارس شدیم یا عجم شدیم یا عرب شدیم تا الله به انتخاب ما نبوده انتخاب الله تا بوده اعتراض بر کسی بر اساس نجادش ملیتش اعتراض بر الله. چون الله این مقدرات را تقسیم کرده اگر کسی در قلبش احساس کرد که من چون از خانواده فلانی پس برترم این برتریت اگر روزی شیطان در دلت وسوسه کرد به خود درو کن و بگو انک امرؤن فیک جاهلیه در تو جاهلیت ای بنده پس توبه کن بگو لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ظلم توبه کن این اعمال ناشایست قلب حدف السلب علم همینه اگر ای طالب علم تومدی حديث خوندی قرآن خوندی بد زبانو بد دهنو حقودو حسود شدی بوی از علم و بیراس نبوت نبردی المؤمنو لیسه بالطعان ولا لعان ولا البذیء ولا الفاحش نفوحش میده دی دوشنام نه دی والله نه زبان زشت و زننده داره نه لعنت میکنه و نفرین میکنه و نهطنه در کسی میزنه تعنه در نسبش تعنه در نژادش المؤمن صفات مؤمن المؤمن ليس المؤمن بطعان نهنتنت به مادرش بزن نهطعانه به خواهرش بزن نهطعه به پدرش بزن نهطانه به خودش نه به شکلش نه به قیافش نه به پیرانش والله حق نداری اگر کسی را تحقیر کردی بدان که الله اون بند ای که فخ فروشه الله دوستش نداره. الله متکبرین رو دوست نداره. الله فخ فروشا رو دوست نداره این همیشه آویز گوشت کو. اگر روزی در دلت آمد بدان که تو از این میراث بوی نبردی. این بو بوی نبووت به مشامت نخورده. رسول الله براش بین بلال و بین ابوذر فرقی نبود والله فرقی نبود. تبعیزی قائل نمی‌شد چون این بلال سیاهه پس فلانه. نه والله عزیز بود. اینها گفتن میراث طالب علم مهدم اولش برای طلب علم اخلاقش نبوی باشه اخلاقش نبوت باشه اخلاقش رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم باشه بوی بحی بیاد. اون پدر افتخار بکنه که بچم محمدیه محمدوار زندگی میکنه صلی الله عليه وسلم بذارید حسرت بخورن اونایی که بچه هاشون به پزشکی میفرستن و مهندسی میفرستن و بعد پدران خودشون مادرانی که زحمت کشیدن را به خانه سالمنداد تحویل میدن واللهی پدرانمون رو سر چشم میذاریم بردگیشون میکنیم این افتخار بردگی به پای مادر و پدر که مثل یک برده خود رو آدم اسیر پدر و مادر بدونه که خدمت آنها بکنه این افتخار از کجا اومد که من مؤمن به چشم افتخار نگاه بکنم از قرآن وقف ظلهما جناح الذل من الرحمه جناح الذل زلت خاری و فرش کن زیر پای پدر و مادر والله افتخاره اون پدر سربلنده اون مادر سربلنده سرافرازه افتخار بینه این افتخارات نبویه طالب علم نه اینکه بیاد اینجا فعل و فاعل را یاد بگیره بعد سلی رحم اش فراموش بکنه بعد بر والده را فراموش بکنه بعد صدق و اخلاص فراموش بکنه بعد اون عبادت و طاعتش فراموش بکنه نه والله اینجا نمیادید شما فعل و فاعل را یاد بگیرید اینها وسایلین برای رضای الهی و خوشنودی الهی این وسایل اگر ارزش استفاده نکنی برای رضای الهی به درد نخواهند خورد رسول الله صلی الله علیه و آله گفتیم رو به این دنیا رو به اصحاب میکنه میگه ان هذه الدنيا ملعونه این دنیا که میبینید هر چیزی که میبینید ملعون ملعون ما فيها هر چیزی که در این دنیا میبینید ملعونه استثناء داره نشده الا ذکر الله وما والا مگر ذکر یاد الله هر چیزی که یاد الله درش باشه هر طاعت و عبادت و و ما احبه الله هر چی که الله اعلان ولایت از اون کرده بنوان دین و دینداری در قرآن و بر زبان رسالت هم وحی کرده که به ما ابلاغ بکنه دنیا همش پسه ملعونه یعنی پسه از رحمت الهی نه بدوره برای الله بی اون چیزی که برای الله ارزش داره چیه دینداری الا ذکر الله اما والا گفتم. این که انسان غنی باشه، گدا نباشه و دست دراز به سوی کسی نباشه، دستش را به سوی کسی دراز نکنه، محموده. نباید انسان تنبل و سست و بیورزه باشه، باد زحمت بکشه، و تلاش بکنه، ولی هم مغممش قرار نده، بحثمون هم مغممه. رسول الله صلی الله علیه و آله برای خودش مالی، ثروتی داشته. من بارها گفته، رسول الله صلی الله علیه و آله مگر صد تا شتر قربانی نکردند در حجۃ الوداع؟ مگر مهمانانی که به رسول الله می آمدن براشون بوز و سر نمی‌ذادت؟ چنانچه دست اونها ترمذی داریم مهمانانی مدن نظر رسول الله صلی بعد چوپان رسول الله آمد رسول الله یک از گوسفندان زائد است یکی دیگه برامون ذبح کن بعد رسول خدا خطاب مهمانان خودش گفتن ان لنا غنم میاء كلما ولدت نحن مكانه اخرى و كما قال علیه الصلاه والسلام ستو بذرین ستو بذر چون چوپان رسول الله بود هر گاه یکی به دنیا آمد یکی دیگری را سر میزنیم برای مهمان خودش سر زد اینجا اکرام مهمان مؤمن همسایه در مقابل ما حقی به گردن ما دار در مقابل من حق حقوقی دارن زیافت اون مهمون اکرام اون همسایه حالا اینا گفتم در باب آداب در چه در کتابه مثل ریاض صالحی اینجا در بخاری همه ابواب دارن برای خودش چون الان بحث ما اینا نیست وعید هم اومده سخت برای کسانی که همسایه شون را اذیت بکنان مؤمن مؤمن متقی قلبش باید پاک باشه رفتارش باید پاک باشه اونطوری که مورد پسند الله باشه مورد رضای الهی باشه رسول الله صلی علیه و سلم میفروند در حدیثی اینکا انتذر ورثتک اغریاء خیر من انتذرهم عالتا يتكففون الناس اینکه فرزندانت غنی رها بکنی بهتر از اینکه دسترازون را رها بکنی که گدای اینو اون باشن اصل تکفف از کفر یعنی دستشونو بی اینو اون دراز بکنن دستراز این اون باشن کنایه از چیه؟ کنایه از گدائی یعنی انسان باید بینیاز از مردم باشه از عرق خودش بخوره این که ما داشته باشیم این که در دنیا نداشته باشیم این که این دنیا ملعونه منافاتی با کار کردن و زحمت کشیدن نداره فقط باید بدونیم به با اندازه روزیمون میخوریم و الله به میده فکر نکنیم اگر دم اذان در مغازه را اون موقعی که مشتری ها اومدن اگر من بسم روزی انقد میشه نا والله با اون بسنه در مغازه در اون وقته ازان واللهی روزیت کم نمیشه واللهی روزیت کم نمیشه واللهی و بالله و اللهی روزیت کم نمیشه روزیت را الله مشخص کرده که چقدر داشته باشی اینقدر حریث نباش فکر نکن با دروغی بر سر معامله روزیت زیاد شده واللهی روزیت مشخص الله مشخص کرده فکر نکن با حیله و نیرنگ و با و غش فکر نکن که سر کسی را کلاه میذاری سر کسی که کلاه رفته اون خودتی ماشینی میخوای بفروشی موبایل میخوای بفروشی اون و میخوای پنهان بکنی والله از الله پنهان نیست از بنده یا الله فرار کردی از الله میخوای کجا فرار بکنی این دنیاست دنیا قداره دنیا قداره یعنی چی قادمان قاله ی الدارو دار الهمی والغمی والعنه سریع تقضیها قریب زوالها. هید دار دار الهم. این دنیا دنیای غم و اندوه لقد خلقنا الانسان في کبد سان در سختی خلق شده این دنیا دنیای هم غم. دنیای سختیه فکر نکنید اون کسی که بر عرش پادشاهی یا حکومت داری نشست راحته یا اون تاجر راحته نه اللهی راحتی در ثروت نیست راحتی در مال دنیا نیست میلیاردرها ثروت داره ولی یک آب گوشتی یک گوشتی نمیتونه بخوره نقرس داره گوشت اصلاً نمیتونه بخوره مریض درد تن داره شیرینی نمیتونه بخوره بسری نمیتونه بخوره میوه نمیتونه بخوره میلیاردم پول داره بهترین ماشینم سواره ولی که از اون حس چشاییش لذت نمیبره شما فرض بکنید سرمایه‌خردید والله در نظر بگیرید اون روزی که حس بویایی شما یا حس چشایی کار نمی کنه غذا را جلو به شما بیارن سنگ بخورید برنج بخورید آبگوش بخورید کباب بخورید فرقی می کنه نه والله فرقی نمی کنه اون کباب با اون نون یکیه چون طعم و مزه تشخیص نمی دی چه لذتی داره اون شخصی که از این نعمت محرومه هي دار و دار الهم والغمی والعنا این دنیا دنیای سختیه دنیای هم غم سریع تقضیها تنقضی بسریعا بس سرعات این دنیا تمام میشه نفهمیدیم که اینکه 45 سالمون و 60 سالمون شد همه همه میگن از بقدرت بپرسید خیلی طول کشید تا این که به این سن و سال رسید میگه نه یه چی به هم زدن بود مثل اینکه بود سریع و سخت داره این دنیا میگذره با سرعت داره میگذره این سرعت همراه سختیه گفتم لغت خلقه الانسان فی کبد این سرعت همراه با سختیه هست کسی نمیتونه انکار بکنه سریع تقضيها قریب زوالها بدنی اگر این سختی هست اگر هم غممی هست خواهد رفت الله اکبر صحابی میاد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلام میگه یا رسول الله میخوام بیناییم بینایم به بهن بر بگرده میخواد رسول الله رو ببینه با این چش میگه یا رسول الله می خام چش من بر بگرده رسول الله چی جوابش میده میگه صبر کن پاداش این صبرت در مقابل نا چیه ولک الجنه در مقابل این نا بهشت برات صبر کرده در مقابل یک محرومیت یک نعمت الله اگر نعمتت از تو گرفت بدون که در عوضش الله بهتر برات گذاشته اینقدر برای دنیا حرص جوش نخور که چرا من ندارم این همه انقلابات و خاری و بدبختی ها در ملت ها و امت ها در دنیا میبینیم خصوصا در میان مسلمان ها این دولت میره دولت دیگر میاد مگر حکومت عثمانی ها رفت بعد از اون حکومتی بهتر اومد نه والله مگر حکومت پادشاهی که در مصر بود اون موقعی که مردم چشمشون به مصر بود که اونها راه آهن دارن قطار دارن نمیدونن فلان دارن پادشاهی بود مصر برای خودش حرفی در دنیا داشت غرب با چشم دیگری به مصر نگاه می کردن. ولی با اون چند بار انقلابی که در اون کشور شد چی شد؟ روز بروز فقیرتر شدن چرا به خیابون ریختن اون مردم؟ دنیا، ریاست طلبی اینا قصد دارن پادشاهان ما هیچی نداریم اینا فلان ماشین سوار هم ما نداریم حرف مردم هم همونه عوضم هم نشد 1400 سال همینه اومدم به قول خودشون. خلیفه مسلمانان و عثمان را به شهادت برسوند تا این که اون خلافتی که فکر می کردن روی کار بیاد که بر حسب مرام خودشون باشه خودشون بر کرسی ریاست بشیند از حسادت ریختن به بود از حسادت اومدن خلیفه مسلمانان را به شهادت رسوندن چیزی جز خفت و زلت نیوردن اون روزی که مسلمان ها وجب به وجب دنیا را فتح می کردن تا اسپانیا هم رسیدن تا قلب اروپا. ولی ایکن بعد که افتادن به جون این دنیا و مال دوست و دنیا دوست شدن چی شد؟ این برادرشو کشت و اون پدرشو کشت خاطر تخت ریاست طلبی رس بوده در پادشاهان عثمانی پدر فرزندان خودش را بکشه اگر خدا بهش پسر میداد پسرشو میکشت چرا؟ تا اینکه این پسر بزرگ نشه بعد بیاد پدرشو بکشه و بر سر کرسی و ریاست حک بریشینه پدر این اینقدر ظالم بشه که بیاد پسر خودش رو بکشه به خاطر چی؟ اینکه پسر فردا تمع ریاست تمع کرسی و تخت پادشاهی در دلش نیاد. پسر خودش رو میکش. برید بخونید، رسم بوده. این رسم هم چنانچه خیلی از مورخی مثل ابن کثیر یاد میکنن، این رسم تاتار بوده که باقی مونده در حکومت ها مول چی رسمی داشتن؟ پادشاه، حاکم اون مزدور میومد، بچه های خودش رو میکشت تا اینکه اون تمع ریاست طلبی در اون دل اون بچه نیاد که پدرش رو بکشه از ترس اینکه پسره پدرش رو بکشه پدر پسر خودش رو از خب میکشد. اون موقع که زورش میره. اینها دنیای غداره فریب است. هی دار و دار الهمی والغمی والعنا سریع تقضیها قریب زوالها بدونید که این دنیا زود میگذره زود نابود میشه. ما یاسیرها عسر و حزن سرورها ما در مقابل هر خوشی تو سختی داری فکر نکن. که همیشه خوشیه نه این دنیا خوشی و سختی داره همیشه پیروزی نیست انما العسر یسر با سختی خوشیه و با خوشی سختیه فکر نکنید که روزی از ناخوشیهای دنیا میتونید گریز بکنید اون با مرگ که این دنیا خاتمه میابه مادامی که زندگی ناخوشیهای دنیا هم هست تو نمردی فنانی میمیره هموغم همچنان هست در این دنیا فکر نکن که از هموغم دنیا فرار میکنی همیشه در خوشی خواهی بود نه این دنیا سرزمین خوشی ها نیست این دنیا برای خوشی ساخته نشده رسول الله صلی الله علیه و در جنگ احد عزیزترین صحابه را رو از دست داد مثل حمزه عموی خودش 70 نفر از صحابه شهید شده چه کسی بود برای مسلمان ها تا درس بگیرن که همیشه خوشی نیست سختی هم هست عبرت بگیرن اون اشتباهات تکرار نکنه میسرها عسر و حزن سرورها اون خوشحالیش در مقابلش غم هم هست غمی متقابل یا پدر و مادرن خوشحالن بچه یا الله بهشون داده اون بچه رو الله میگیره یا اون بچه خوشحال پدر و مادری داره پدر و مادر را ازش میگیره این اندوه راه گریزی ازش نیست و حزن و سرورها و ارباحها خسرون هر چقدر مال و ثروت داشته باشی تو دوچار زیان شدی عجب مال و زیان این قد ثروت این قد پادشاهی این قد ماشین این قد خونه بد خسارت و زیان بله والله خسارت و زیان غیر از این بود که تو از تهجدت زدی از عبادتت از صلاوت قرآنت زدی به خاطر این ماشین به خاطر این قصر اون قصری که با خودت در اون قبرت نبردی اون مال و ثروتی که با خودت از این دنیا نبردی خسران یا خسران نیست این قد عرق ریختی این قد از خوابت زدی این قد مریضی کشیدی بخاطر به خاطر به دست آوردن این مال و ثروت آخرش تو را در کفنی پیچوندن که نجیبی دارد که در اون مقدار مالی هم با خودت در اون قبر ببری پارچهی که دوخته نشده تو را در اون می پیچونن. سپس در قبر تک و تنها رهات می کنن دستتم از اونجا نمی تونی به این دنیا دراز بکنی از اون مال و سروتی که این همه زحمت کشیدی استفاده بکنی ای مؤمن خصیص نباش ای مؤمن بخیل نباش ای مؤمن بدون هر چقدر تو مال به دست اگر این مالت سبب طاعت الهی نشه اون مال خسران و زیانه اون زرره نه نفع. مالت اگر ازش سودی نبردی برای اون برپایی تحجدت برپایی سنتات برپایی حفظ قرآنت کمکت نکرد در حفظ قرآنت بدون ای مؤمن که تو در خسران و زیانی این چراغ این برق به درد چید میخوره وقتی که تو از این برق و این چراغ برای علم و برای عبادت الهی استفاده نکنی خسران و زیانه و ارباحها خس. هر چقدر از این زیورالات از این خوشی ها و نعمت های دنیا داشته باشی اگر در طاعت الهی استفاده نکنی اون خسران و زیانه والعصر ان الانسان لفی خس اس خسران و زیانه الا للذین امنوا استثناء از این خسران زیان کیا کیا هستند مؤمنين انهائي كه اهل عمل صالحان اونهايي كه اون هایی که در مقابل سختی ها صبورن والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الصبر ونقص كمالها يعني چی ونقص كمالها هر چقدر از این مال دنیا داشته باشی اون ناقصه هر چقدر چرا ناقصه چون گفتم هر چقدر مال و ثروت داشته باشی با خودت نمیتونی حملش بکنی به اون دنیا ببری رهاش می‌کنی و این دنیا نابود شده نیست نابود خواهد شد از بین خواهد رفت دنیای زواله از دعای رسول الله صلی الله علیه و آله که صحابه میگوین که رسول الله صلی الله علیه و آله بهمون یاد میداد مثل سوره فاتحه از دعایی که رسول الله صلی الله علیه و آله بهمون میگه یاد میدادن این دعا بود اللهم انی عبدک ابن عبدک ابن امتك ناصیتی بیدک ماضن فی حکمک عدل فی قضائک از التک بكل اسم هو لک سمیت بی نفسك و علمت من خلقه او استأثرت بی في علم الغيب عندک ان تجعل القرآن ربيع قلبي و صدري وجلاء و جلاء دعاء از این دعا اون اعتقادی رو یک بکنار اسمی الله کتو قیفیه و تفسل باسم الله این بکنارش چی یاد میگریم از این دعا از این دعا قسمت آخرش بار الله مای خوشبختی من خوشی من نور و چراغ قلب من رو چی قرار بده؟ تاریکی هست این تاریکی در مقابلش روشنایی هم هست اگر خسران و زیانه اگر خسران و زیانه در مقابل این خسران و زیان چراغی هم هست نوری هم هست مؤمن هر چقدر سختی در این دنیا داشته باشه چون ایمان به الله داره چون قانع به رزقش قلبش همیشه روشنه ولی که این قلب وقتی روشن میشه که نور قرآن درش باشه بخاطر همین الله جل شانه در قرآن میگه و من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين و من یعشو کسی <تصفيق> که از ذکر الله غافل بشه غفلتت از یاد الله اگر احساس بدبختی اگر احساس خاری اگر احساس ذلت اگر احساس کمپولی اگر احساس مرز بر تو قلب کر ای مؤمن بدان که تو وابسته به قرآن نیستی بدان که چراغ قرآن نور قرآن در دل تو تابشی ندارد تو با قرآن روشن نیست دنبال فهم قرآن نبودی دنبال تلاوت قرآن و تدبر در قرآن نبودی تو بر قرآن قف شده بود افلا ی قرآن ام علی قلوب اقفالها. منافقینی که نور قرآن اگر در دلشون تابش نداش بخاطر اینکه قلب خودشون رو قف کرده بودن بسه بودن قلبشون پلم شده بود امامن قلبتو خدا تو روشن کن به دنبالش باش تو راه نجاتی داری ای مؤمن اگر همی اگر اندوهی هست راه نجاتی برات هست هرگاه هم غمبی به رسید رسول الله صلوات الله علیه میگه این دعا را بکن و در انتهاش هم این به یاد میده که بگی تجل قرآن ربيع قلبی بهار دلت رو این قرآن قرار بده قرآن, قرآن بهار دلت بشه شکوفا بشه این دلت با قرآن از اون سختی پاییز و زمستانش دربیات بهار بشه همیشه با این قرآن قلبت بهار مشه ای مؤمن قلبت آباد مشه ای مؤمن انتجلل قرآن ربيع قلبي و نور صدری روشنائی اون قلب تاریکت مشه اون قرآن کبش روی ورد ای مؤمن بلی با تدبر بلی با فهم درک و جلاء حزنی و ذهاب همی بار الله این قرآن را یا رویاوری برای من قرار بده که غم و اندوه را از من بسداید غم و اندوه را از دل من ببره تو دعا میکنی الله سجابت نمیکنه نا والله الله سجابت میکنه برات ولی که اگر خالصانه خواستی نه اینکه فقط دعا بر سر زبانت باشد همون که رسول میفرمایند ان الله لا یسجيب الدعاء من قلب غافل لا اون قلبی که مشغوله اون قلبی که نمیدونه خودش از الله چی میخواد این دعا را میخونه ولی نمیدونه از الله چی میخواهد اون شخص این دعا براش ارزشی نداره یکی برای این که اون کسی نمیدونه این چی داره میخونه یکی برای اون کسی که حرمات الله را زیر پا گذاشته توقع داره که این قرآن براش روشنایی و غمزدایی بکنه اون شخصی که رسایو یاد میکنه مطعمه حرام ملبسه حرام لباسش از حرامه غذاش از حرامه انی استجاب له الله چگونه دعاش استجابت بکنه کسی که حرام و حلال نمیفهمه الله چگونه دعاش استجابت بکنه. دعاش سجابت نمیشه بس الله اون بندهیه که مخلصانه و خالصانه و از زل از الله میخواهه اون کسی که اهل عبادت و طاعات و از گناهان دوری ورزیده الله بدون شک این دعاش را استجابت میکنه و چنانچه رسول الله بعد داده میگه الا اذهب الله و همه کسی نیست این دعا را بکنه مگر اینکه الله دعاش اگر استجابت نشد مشکل از کجاست؟ مشکل از خودت ای مؤمن بدون که پایت یک جایی لغزیده بدون جاي مرتكبة قناه معصيتي شده دمائي حديث يقول إلا أذهب الله عز وجل همه وابدله مكانا حزني فرحة ممكن نيس مغار إنك الله بجاي ان غمش خوشحالي قرار مده صحابي قفتا يا رصد ينبغي لنا أن أتعلم هؤلاء كلمات بايد ياد بيجريم قال أجل ينبغي لمن سميعهن يتعلمهن كسي كمشنوي بايد ياد بيجري إن دعارا صلى الله على محمد على محمد.